مرگ را آن بکوبد که پای و اسپر آرد به جنبت جای. همه مرگ را این پیر و جوان بگیتی نماد کسی جاابتان. نام خدا، خداوند کیوان و گردان سپه، فروزنده ماه و ناهید و مهر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و فرزانه شبکه فرهنگ و به تخصیص برنامه پنجره های روبه محتاب و خوشحالم از اینکه این توفیق بزرگ نصیب من شده تا در خدمت شما عزیزان باشم و همینطور در خدمت جناب استاد فریدون جونیدی و این توفیق بزرگیه که بنده برای اولین شب در این برنامه بی واسطه ابزارهای وسایلی مستقیما در خدمت استاد جنیدی هستم که هیچ نیازی به معرفی بنده ندارم جناب استاد سلام عرض از میکنم خدمت میدونم خیلی خوشحالم. خوب بر شما شاد باشید. امشب با ادامه داستان نورد رستم و سهراب در خدمت شماییم و من تفصیل نمیدم دوری میکنم از اتناب و خواهش میکنم از جناب استاد بحث را آغاز کنم بیاد داریم که حسین نورد رستم و سهراب پایان رسید بی پیروزی هیچ ایک از آن دو و بران نهادند که روز دیگر با کشتی نبرد را آغاز کنند. چه تابان تاوان برابرد پر، سی احزاغ پران پر فرو برد سر، یعنی شب تیره در پشت ها پنان شد. تمتن بپوشید ببر بیان نشست از برای جند پیل جیان بیامد سوی دشت آورد گاه. مهاده به سربر، ز آخن به بپوشید، سهراب، خفتان رزم، سرش پرزه رزم و دلش پرزه بازم. ز رستن بپرسید، خندان دولب، که گفتی که با او به هم بوده شب. که شب چون بودت؟ روز چون خواستی؟ ز پیکار بر دل چه راستی؟ بیا تا نشینیم هر به هم. به می تازه داریم روگ دو جم، بمون تا کسی دیگر آید برازم، تو با من بساز و بیا رای بازم، دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شر من به چهر آورد، همانا که داری زگردان نجات. کنی پیش من گوهر خیش یاد؟ بدو گفت راستم که ای نام جوی، نبودیم دی، خود بدیم گفتگوی. نه من کودکم، گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بسته دارم میان، به کوشی و جامع کاران بود، که فرمان و رای جهانمان بود. وسیع هم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. تلفظ هر دو نشیب و فریب، در پلبی نشیب و فریب، در فرسی نشیب و فریب. اون تا خب دیگه من متبای عادت خوندم. بدو گفت سهراب از مرد پیر نباشد سخن زین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که در بسترت براویت به هنگام هوش از برد. هوش یعنی مرگ. مرگ تو در بستر اتفاق بیفته. البته این یه ننگ بزرگی بود برای پهلوانان باستان چون همواره آرزو داشتن که مرگشون در میدان جنگ باشه. مرگ در بستر متعلق به پهلوانان نبود. زیونده پهلوانان نبود. بدین ترتیب جان خودشون رو در میدان فدای آزادی میهن میکردند. این افتخار بزرگی بود که در میدان بمیرند. اگر هوش تو زیر دست من است به فرمان یزدان پسایی دست. پسایی دست یعنی دست ها هم بگیریم برای کشتی ببستند بر سنگ اسب نبرد برفتند هر دور روان پر ز درد به کشتیچ و شیران بر او ویفتند و خون فرو ریختند خای یعنی عرق بزد دست سهراب چون پیل مست برآوردش از بن ها تست به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آقاید. به سر نشست از بره سینه پیلتن پر از خاک چنگال و رود و دهن یکی خنجر آبون برکشید همی خواست از تن سرش را برید. نگه کرد رستم به آواز گفت که این راز باید گشاد از نهفت کسی کوب کشتی نورد آورد سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پیش پشتش نهد بر زمین، نبارد سرش گرچه باشد بکین دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببودین سخون دلپذیر. چو دست زدست آزاد شد به سان یکی تیخ پولاد شد. خرامان بشد سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان شده یعنی مرده یعنی رفته از جهان. همین خواست پیروزی و دستگاه، نبود آگه از بخشش شهور و ما، که چون رفت خواهد سفر از برش، به خواهد رو بودن کلاه از آب خور شد به جای نبعد، پرندیشه بودش دل و روی، زرد، به گربار اسفان به بستن سخت. به سربر همی دشت بدخواه بخت. به کشتی گرفتن، نهادن سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هرانگه که خشم آورد بخت شوم، شود سنگ به کردار موم. بخوری درستم بیازی چنگ گرفتن برای یال جنگی پلنگ، خم پشت دلیر جوان زمانه بی آمد نبودش توان زمانه یعنی عجل زدش بر زمین بر به شعر شیر بدان اسکو هم نماند بذیر سبک تیغ از میان برکشید برای پور بیدار دل بردارید به پیچی دوزان پس یکی آه کرد زنی و کو بد کوتاه کرد دوستان با برنامه پنجره های روبه مهتاب در خدمت شما هستیم شما میتونید با این شماره های تلفن با ما تماس بگیرید 220-485-220-58-800 سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ هم 3558 هست میتونید نظرها، پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو با این شماره‌ای که خدمتتون عرض کردن برای ما بفرستید و اگر پرسشی هم داشتید جناب استاد جنیدی در خدمتتون هستند و حتما به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. خب استاد ادامه این داستان رو ما مشتاقیم که داشته باشیم. بله اینجا موضیع هست که تفسیری این داستان اینکه سیستانیان پیاده با کمانگونیان پیاده روبرو میشن در روز نخست پیروزی تقریبی با سمنگانیان است و سیستانیان اندکی با شکست رو بود روز دوم نبرده روان پیدا با روز دوم یعنی گاه دوم شاید یک هفته بعد شاید در روز بعد هر چند روز بعد بوده و اینجا پیروزی با سیستانیان میشه من متاسفم که بسیاری از کسانی که شاهنام میخونن یا تفسیر میکنن اینجا اینجا میگن که رخصن ایران زد رخصن در زده جنگ جنگی پیادهگان سیستانی با سامنگونیان در روز اول با شکست سیستانیان در روز دوم با شکست همراه میشه بعد از اینکه این نبرد اتفاق میفته اون وقت اینا هم دیگه را که اینا پدر و فرزندن یعنی از یک و که کار از کار گذشته. بهپیچید و آن آه کرد زنی کو بدنددیش کوتاه کرد. و دو گفت که این بر من از من رسید زمانه به دست تو دادم کلید یعنی کلید مرا به دست تو داد. تو بی بیگونای که این کوش پشت مرا برکشید و به زودی بکشت کنون گرد تو در آب ماهی شوی و گرد تو شبن سیاهی شوی و گرد تو ستاره شوی بر به ببریز روی زمین پاک مر بخواهد پدر از تو خود تین من چو بیند که خشته است باورین من از آن نامداران و گردن کشان اشاره به نامداران ایران میکنه از راه دور تمام شاهنامه اومده از این نامداران این در حالی که میدان نبر دور بوده و از آن درسته. از آن نامداران و گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کشتست و افکنده خار همی خواست کردن تو و آستار. چوبش نید رستم، سرش خیره گشت. جهان پیشی درش تیره گشت. بپرسید زم پس که آمد به هوش به دو با نالو و با خروش بگو تا چه داری رستم نشان که باد نامش زگردن کشان که رستم منم کمم آناد نام نشیناد بر ماتن من پور سام. به دو ریدون که رستم تویی بکشتی مرا خیره برد بدخویی. ز هرگونه بودم تو را رهنمای نجنبید یک ذره مهرت زجای چو برخاست آواز و کوس از درم بیامد پر از خون دروغ مادرم همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت کین از پدر یادگار بدار و ببین تا کیاید بهکار کنون کارگر شد که بیکار گشت پسر پیش چشم پدر خار گشت کنون بند بگشههای از جوشنم بهرهنه نگه کن تن روشنم به بازون بر مهره خود نگر ببین تا چه دیدیم پسر از پدر چو بخشهاد خفتان آن مهره دید همه جامه بر خویشتن بردارید همی ریخت خون و همی کنب موی سرش پرز خاک و پر از آب روی، به دو گفت سهراب که این بدتری است، که بر کرده خود نباید گریست، از این خیش چند کشتنک نون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود، بودنی کار یعنی تغبیر. چه خرشید تابان زگنبت بگشت، تهمتن نیامد به لشکر زدشت، از آن پس بلشگرد چونین گفت شاه که زیدر هیونی سوی رازگاه بتازید تا کار سوراب چیست که بر شهر ایران بباید گریست. اگر کشته شد رستم جنگ جوی از ایران که شدن پیش اوی یارستن یعنی جرات کردن. به انبو زخمی بباید زدم یعنی دورشگرد با حمو دو و دیگه کار نکنن بلکه همیشه با هم حرکت بکنیم که به هم بیا تا معلوم بشه که پیروزی از اون کیست برای این رزمگاه بر نشاید بودن که شو آشوب شوب از انجمن یعنی انجمن سپاه ایران خود واجی انجمن در ابو سگد هنگم یعنی هم یعنی با هم رفتن کسانی که با هم یک کار رو انجام میدن همگم این در پله شد هنجمن در فارسی شد انجمن که از ظاهرش معنی پیدا نمیشه ولی یعنی کسانی که همه با هم یک کار رو انجام میدن انجمن به معنی جلسه است در حالی که امروز ما انجمن رو به معنی یه سازمان میگیریم که مثلا با هم کار میکنن و با هم هم دیگر رو میبینن که آشوب برخواست از انجمن چنین گفت سهراب با پیلتن که اکنون که روز منند در گذشت. همه کار توران دگرگونه گشت. همه مهربانی بران کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه. که ایشان زبهر مرا جنگ جوی سوی مرز ایران نهادند روی. نباید که بینند رنجی براه. مکن جز به نیکی بریشون نگاه نباید که بینند رنجی برا مکن جز به نیکی بریشون نگاه ساعت 21 و یک و پنجاه دقیقه و سی و هفت ثانیه است و ما از شبکی فرهنگ با برنامه رو به محتاب در خدمت شما عزیزه بله دوستان، یه چند پیامک رسیده که من چندتایی از این پیامک ها رو خدمتون میخونم دوستی پرسیدن که با سلام از برنامه خوبتان از استاد سوال کنید آیا این درست است که مادر سهراب از روستایی به نام سمنگان است؟ بله این شنونده گرامی گویا تازه به برنامه ما پیوستند ما در این صحبت کردیم سمنگان اصلی شهری بوده است که اون طرف از بلخ یعنی نزدیکر به مرز توران اما سمنگان است که مرتبا تکرار شده به طوری که در نیشابور ما یک روستایی داریم به نام سمنگان که امروز ویرانه یک روستا بود در نرمک تهران که امروز شهر اجدای های شهر اون رو در حقیقت بلیده در نار یک سمنگان در زنجان داریم و اون برمامه که صحبت می کردیم از کرماشان هم کسی پیام داد که در کرماشان هم یک سمنگان داریم این, نش... این شهرها و این نامها تکرار می شون نشانه ماجرت هاست که از یک جایی بیجه یک گروه حرکت بگنن نام خودشون با خودشون می‌برن. بله از یک شهری به نام سمنگان بود. بله. دوست دیگه پرسیدن با درود همیشه این برایم هم پرسش بوده که آیا رستم نمونه ی انسان آرمانی آیا مجاز به فریفتن صحرافت؟ من همین اکران بشم نیرنگ نبود فعال گفت که محتری سر محتری چرا, این،, چرا این تصور برای بسیاری از شاهنامه پجموهان و شاهنامشان اصلا دو وجود اومده که این نیرنگ بوده مت... چه نشانه ای در این ماجره متاسفانه این در سالها اخیر برای فرزندان ایران دو داستان از رو رستم رو بازگو کردن در کتاب یکی یک کشتن شدن سهراب به دست رستم یک کشت شدن اسفندیار به دست رستم بعد رستم خواستن یه چهره در حقیقت فریبون رنگ بسازند ما اینا رو بررسی کردیم در داستان رستم و اسفندیار همه گناه متوجه اسفندیاره نه. به طور که حتی پشوتن برادر اسفندیار در پس از نخستین دیدار به برادرش میگه که شنیدم همه هرچ رستم گفت. سخونهاش با مردمی بود جفت نساید رو بند تو نه اندیشد از فر و اورند تو اورند یعنی پادشاهی نیک خلاف ساستار که پادشاهی بده با با کشتار رو زدن همراهه و این ساستار در عویستو ساتره سایه نی سا کردند. یعنی قد کردن با پتوند تره میشه قد کننده یعنی کسی که سر میبورده دست میبورده در کتاب تاریخ به خونده باشید یه جمله خیلی جالبی اومده یک جا، که بفرمود تا او نیک سیاست بکردن و دست و پای بشکستند این نشون میده که سیاست حتی در این زمان هم به منی قد کردن دست و پای سر بوده از این واجه سی عربی و سیاست برامد که به سیاست به منی مجازات کردن هم هست اما در برابر اورند یعنی نیک راندن نیک راندن این بیشه پادشاهی خوب که به کشتن و دست کردن نمی انجامه خوب که با مهر به مردم می و اون مردم رو مانه فرزندان خود دوست دارد اینجا پشوزن می که نه دوپای ترابند دوپای ورابند تو نه اندیشد از فر اورند تو سوار جهان پور دستان سام به بازی سراندر نی آرد بدام و که این کار گردد دراز زابول میان تو کردن فراز یعنی برادر اسفندیار گناه رو متوجه اسفندیار بکنه حالا امروز کسان هستن که بگن نه گناه متوجه رستمه. بارها و بارها ما در این برمامه ها اشاره کردیم اه. که رستم همه لابه کرد همه هی خواهش کرد حتی جایی که زال به پند میده که یک کاری بکن بازر و گوهر دل اسفندیار رو به دست بیاره که جنگ نشه و رستن پاسخ میده در روز از سرز کیوان فرود آردی کیوان بلندترین ستاره منظومه شسی است که سی سالی یک بار در خمش رشید میگرده و ایرانیان میتونستن این رو میدونستند که این دورترین این ستاره منظومه خورشیه البته بعداً در اروپا با یاری دوربین ها و اینها نپتون و پروتان را پیدا کردند ولی کیوان رو ما تا کیوان رو ما پیدا کرده بودیم و ضمننا میدونستیم که سی سال یک بار میره و سردترین ستاره است و حتی در نوشته های دینی که دوزخ رو سرد به نظر میوردن می که کیوان سردیش به دوزخ میمونه و هر اینجا میگه که کیوان بلندترین ستاره آسم گروه سرد کیوان فرو داردی روانش بر من یا زبانش بر من درو داردی از اون نیستی گنج و گوهر دریق نه برگستبان نه کوپال و تیغ میبینید که مرتبن رستم داره خواهش میکنه اما اسفندیار خلاف میگه. اسفندیار برای به دست آوردن پادشاهی میخواد باستتم به جنگ. وقتی که ما محیط رو بر عخیم رسستتم فریب کار میشه. باید با نگاه درست به شنامه نگریست از اسفندیار و درباره سر یه مهتره من شخصا خودم که ورزش باستانی کردم گاهگاه گاه یه وقتهایی به شوخی به جوون های گفتم کشتی میگیریم هر کس که کشتی گیر بود و میدان رده بود و گود ذورر رو آزمایش کرده بود همه به من گفتن پدرم به من نصیت کرده با بزرگتر از خود کشتی نگیر این هنوز هم هست هنوز هم کشتی را این کار میکن یعنی این آداب برزش باستانیه این آداب پهلبانیه نباید که کسی رو با موی سفید زدی زمین همون بلا فاصله اینها متاسفانه گزارش بد و در حقیقت نتیجه برگردسن از داستانه رستم جانش فدای ایرانه رستم برای ایران میخواد زنده باشه و سهراب با سپایان دشمن اومده میخواد ایران رو بگیره به خاطر اینکه رستم رو پادشاه کنه چرا با یک بار دیگر در این برنامه سخن رفت سهراب خودش میامد به دیدار رستم با یک کاروان حرکت میکرد به اصبوسی پدر چرا با دو سردار تورانی اومد یهونه ویران کنه حقیقت خود. میشه گفت که سهراب فریب خورد سهراب ف... بر... فریب خورد بله سهراب فریب خورد افراسیاب براش خودش هم به, اف... به مادر گفته بوده که من میرم همه شهری ایران آتش بزنم و برانگیزم از تخت کوه به پهوبس کنم بیژن و توش رو شهری رونق تیش بزنم رستام رو بیارم به توران برم بکوشم بعد چون پدر باشد و من پسر نباید بگیتی یکی تاج این آنتیس بود ده ده. که درست نبوده. در هر صورت ما باید بدونیم که پهلوان ایران که جانش رو فتای ایران میکرد با فریب و میرنگ راه نبوده یکی دیگر دوستان جناب استاد پرسیدن که میخواستم بپرسم آیا درست است که جنگ رستم و سهراب در مازندران نوشه و بخش کجور انجام گرفته و اسم رسته های اطراف را از این جنگ گرفتند آقای حمید نمازی از نوشه درود به نوشر و اون امواج آبی زیبای دریای هرکانی و آبسکون و مازندران و خزر و خب این یکی در این احساس افتخاره برای همه افراد ایرانی که برستان رو متعلق به خودشون بتونن و دستانهای زیاد من در گوش کنار ایران شنیدم از جمله یکی ام دخمه‌ای که در گلستان درست میکردن اون کسی که درست می‌کرده معلوم میشه که در جنگی شکست خورده بوده یک دخمه کاره واقعا مونده به شکل اخیر اسب به تا به بلندای 12 متر بندرستان همه عقیده دارن که اینجا اخر رخش اسمش اصلا اخر رخش میگن در حالی که دخمه از اینجا دخمه‌ای که گور گورگاه باشه و بعد میگن که در اینجا رخش از رستم نافرمانی کرد رستم هزار ضرب شلاغ بر رخش زد و رخش یک شیهه کشید که در شهر چین اونو شمیدن ببینید اینطور ایرانیان میخوان خودشون رو به نزدیک بکنن اما معلومه که دجی بود که اون رو میخوندن سپید به دوندش بود ایرانیان رو امید دوندش سپید بوده در نزدیکی مرز ایران توران بوده بله جوزیات مبسوط خوبی بود دشت تلاش ها جناب استاد فراوون و من واقعا نمیدونم که کدوم رو انتخاب بکنم و کدوم این دیگه بله، کدوم بله، مناسب پره همی... رو جنب... که شما خب خیلی زیاده استاد من باید اسخاهی بکنم است. شنرمندگان عزیز اگر قرار باشه که همه این پرسش ها خونده بشه و به همه این پرسش ها پاسخ داده بشه ما واقعا از داستان رسولم و سهره باز میمونیم و خب به حال حیفه که پرسش کنندگان باید از این زاویه نگاه کنن برده. که این برنامه مورد توجه ایرانیانه برده. از اینجا شادمان باشن در هسته حالا من که نمیدونم شما بسیار عرض ارادت و احترام دارن نسبت به شما و یعنی علاقه خاصی دارن حتی مثلا یکی از این پیامک ها هستش که شما رو پدر خودشون خطاب کردن و اظهار علاقه کردن واقعا به علاوه جلبوستاد من فکر می کنم که رستم و سهراب رو شاید از هر زاویه ای که نگاه بکنیم این داستان رو کم که هم حماسی هم این وس و همین که میتونه تعابیر و تفاسیر مختلفی هم داشته باشه شاید بر اساس اون نظام فکری ما، نظام اخلاقی ما، با توجه به اون داشته های فرهنگی ما که هر کدوم با هم متفاوت شاید باشه اگر نزدیک بشیم به شاهنامه، تعبیر و تفسیری در شأن و شخصیت و اندازهی خودمون داشته باشیم. درست. و خب شاید نشه واقعا ایراد هم گرفت از یک نظر یک اتفاقی ممکنه در شاهنامه از یک نظر به اخلاقی جلوه بکنه در حالی که کاملا اخلاقیه تعابی و تفاسیر مختلفه ولی تردید در این نیستش که شاهنامه یکی از شاهکارهای سرف نظر از داستان سرایی شاهکارهایی که بسیار آموزنده شاهنامه و... ببخشید یکی از شاهکارها نیست حالا من اودیسه مثلا, مثلا هومر رو که شاید مثلا داست. حمله بر خودشیفتگی و خود بزرگبینی باشه اگر ما مثلا بگیم که هنر نزد ایرانیان است بعد این چه نیست؟ حالا حالا <تصفح> بله ای هم از این absurde است. بله اینم یه هست. وقتی که شاهنامه ما داریم که اشاره میکنه به برم چهارم یعنی چهارمی سرمایه بزرگ کره زمین که در هزار سال پیش اتفاق افتاده این نمیشه با هیچ کتاب دیگه در جهان مقایسه کرد و بی تردید بزر... بزرگترین کتاب جهان بزرگترین است که بر دست مردمان نوشته شده من کتاب های دینی رو اه... کنار میذارم ولی بزرگترین اثر اه... در حقیقت پدید آمده به وسیله مردمانه و نظر به گذاشته های بسیار بسیار دور داره ده هزار سال دوازه هزار سال پیشتر از ایجاد یونان ما شاهنامه داشتیم شما وقتی که میبینید که در جنگ که اتفاق افتاده و ع سپم شخوانشی اون در کتاب استر نوشته خارجیان نوشتن دیگه نوشته که آن شب شاه تا ها صبح نخوابید و بر اون نامه شاهان پیشین را میخوااندن نامه شاهانه پیشین یعنی چی؟ یعنی شاهنامه این شاهنامه که انقدر قدمت داره اون رو با هیچ کتاب نمیشه مقایسه کرد و این افتخار ما ایرانیانه ما باید به این ببالیم افتخار بکنیم البته من بسیاری از این رازها رمزارها رو در کتاب زندگی و مجرت آرییان گشودم به صورت بسیار تر و در حقیقت تر در کتاب و داستان ایران زیو چاپ داریم که من موجه میدم به ایرانیان به امید یزدان تا نوروز امسال به دست ایرانیان برسه اون وقت می‌بینیم که شما من نمیشه با هیچ کتابی مقایسه کرد حالا بله. من پیام بعدی رو اگر بله بله البته من خودم یه سوال داشتم شاید این سوالم تکراری باشه این پرسش منی که شاهنامه داستان‌هاش وجود داشته دیگه یعنی مشهور و معروف بوده یعنی اینطور نبوده که فردوسی خود شخصا بخواد خلاقیتی در این زمینه داشته باشه شیوه نوع نگاه نوع بیان و چگونگی سرایش شاهنامه شاهنامه رو ممتاز و متمایز کرده از شاهنامه‌هایی که پیش از یا به سواب و داستان‌ها و حکایت‌های اساطیری که پیش از فردوسی وجود داشته باشه اون واقعا اون ویژگی که باعث مانایی و جاودانگی شاهنامه شده صرف نظر از داستان داستان‌های مشهور و معروفش چیه واقعا در شاهنامه شاهنامه خیلی از این کسانی که نام استادم دارن تکرار می‌کنن که سروده‌ی فردوسی است و گفتوار فردوسی است در حالی که فردوسی در آغاز کار خود می‌فرماهد که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بهرهی برده هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد روزگار و هوست که سخانها همه باجوس این شخص انوشهروان ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسی کنانگی خراسانه چون نامش در آهنگ گفتار نمی نمیگنجید بنابراین نام رو نیاورده زهر کشوری موبدی سالخرد بیاورد و این نامه را گرد کرد به پرسیدشان از نجاد کیان وززن نامداران و فروخت گان که گیتی و آغاز چون داشتن که ایدون به ما خار بذاشتند. چگونه به بعد اختی بریشان همه روز گآوری. می بینید که این کتاب از زمان و باستان بوده چهار ترجمان داشته من اینا همه رو در برنامه های پیشین گفتم ولی چون شما خودتون پرسش کردید حالا من به اسب ویژی هایزبانی اشکالی هم نداره برای کسانی تازه این برنامه پیوستن اینا رو بدونن. بعد وقتی این چهار کس... کسی که اینا رو ترجمه کردن یکی موبت شادان برزی بود از شهر توس یکی موبت ماهول خوشید بود از شهر نیشابور یکی یکی از یزدانداد بود از سیستان یکی پهلوان و بزرگ خراسانی به نام ماخ بود این از شهر هرات این چهار نفر در توس گرد هم آمدن در سال 356 و این داستان ها به فارسی زیر نظر ابو مس این به نصر فارسی در آمد. این کتاب رو متاسفان در دست نداریم ولی خوشبختان پیشکفتانشو قذبینی پیدا کرد علامه قذبینی پیدا کرده و در بسمقالهش آورده شما می اونو بخونید مم. یا نسر شیرین فارسی که این کتاب موجود بود اما فردوسی با مم. کلام آهنگین با سخن آسمانی خودش بزیوه ترین آرای آراست و این هر دور داره یعنی بخشی که دقیه به شع در بود از پاتری گشتست اگر به همون شیوه شاهنامه میمون هیچ در حقیقت امتیاز پیدا نمیکرد شاید به زودی فراموش می شد. یه چیزی مثل بررزو نامه مثل فرامرض الان داریم مم. از این نامه ها داریم ولی کسی اینا رو نمی برای که گفتار دقیقی اون گفتاری نبود که وی داشت به گمان من مادر ایران به دقیقه گفت تو کنار بنشین من فرزند دیگی دارم تا او به طوال مادری رو گفت کنار بشین یعنی دقیقی رفت نه. از جهان نه. و این به بالاترین شیوه گفتار جهان که گفتار فردوسی باشه آراسته شد بنابراین هم این جمبر داره که زیباست بسیار زیبا و شیباست هم این جمبر داره که داستانها تاریخ ایرانه و واقعی بوده و اتفاق افتاده و ده کتاب های باستانی بوده ترجمه شده از پهلبی به فارسی و حالا در اینجا ترجمه شده به شعر اگر سو... خدمت جناب ارساد ارز بکنم که در حقیقت یک طوری ویژگی های زبانی در کار فیدوسی هست که ممکنه شنونده های معمولی متوجه این تکنیک و این آرایه های لفتی نشن اما تحت تاثیر قرار بگیرن مثلا شما خودتون بهتر میدونید یه صنعتی و یه تکنیکی که فردوسی در اوج فساعت و بلاقت از این صنعت استفاده کرده و شما حتما این دو بیت رو در حافظه دارید رو در روز نبردان یل ارجمند به تیغ و به خنجر به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست خوب. حالا حتی اگر الهاوی هم باشه این افزوده است بله کسی که کس سروده البته زیباتن لفظ و نفس ایران ده. اما نگاه کنید کسی که میاد جنگ میکنه نمیتونه به دستش گورتو کمندو خنجر و شمشیر رو بگیره این از در حقیقت آرای لغزی زیباس از در آرایش جنگی نادرسته درست من اینا رو در شانه خودم معین کردم این جزه افسوده های به شعره. کاش که همه اون افتاندگان با نگاه اناد نگاره میکردن اینجوری اضافه میکردن. بله خب خیلی نمیشود. یه خنجر تو این دست یک چیز تو این دست و من اینا همه رو صحبت کردم. حالا میخواد بازم اترین. نه نه نه. نه میگم حالا یعنی برای از نظر معنایی شما میدید. از نظر معنی چیزی قرار معنی محفوظه. بگه... بگیره ممکن نیست که کسی در میدان جنگ از کمند استفاده کنه. میدان جنگ پر از آشوبه. کمند که صحرا میخواد تو ما من که تلویزیون ندارم و نگاه نمیکنم. ولی گاهگاه که دیدم این گاوبوهای آمریکایی که کمند می‌ذارن به شاخ گاو یا به اسب می‌ذارن تو بیابون هستن. کمند و بپیشه تو هوا، بره 20 متر، 30 متر، 40 متر تا بخور بگیره یا له اسب رو گردن اسب بگیره و اونو بزن زمین یا گاو رو. توی هم همه و هیاهوی میدان جنگ که همه دارن حمله میکنن کمند کاربر نداره اصلا این شعر از ذهر آرایش جنگی نادرسته ولی خب زیبا البته و امکان نداره که فردوسی هم خطا کرده باشه فردوسی ام امکان نداره حالی انا رو ما همه رو بررسی کردیم یکی از سنجه هایی که من در بیراشتان کار بردم شناخت ابزار جنگ آلات جنگی میدان دو هم آورده و شیوه نبردش نبرد چطور آغاز میشود چطور به پایان میرسید من همه اینا رو بررسی کردم و می‌بینیم که این دوبیت نمی‌دونه خب، جز شاهنامه بوده باشه. اصلاً اصلاً می‌خوام در کهن‌ترین به اصطلاح نسخه شاهنامه که وجود داره این دوبیت نیست. در با کهن‌ترین نسخه‌ای که هست این هست. من تا شما باید بدونه که در زمان اینا رو هم من این مم. مم. من من، من من رو من گفتم آخه شما امشب اومدید من مهمان شما چو... من گفتم که تکلیف بزرگی بوده برای من ما اینا گفتم. برامون گفتن. دوبیت کردن. همیشه گوش بکنم به ببینید این زمانی که به موضوع رسید، موضوع غزنی رسید، این فکر کرد که همونطور که این همه شاعر یاوگو محمود رو بردن به عرش اینها یه یک کار بکنن که شاهنامه ایران رو به نام محمود بکنن اون وقت هر شاعر فراهم کردن این پنج شانامه ها رو جمع کردن همه رو از ببردن این پنج شاعر داستان ها رو گشودن در میان این گشوده ها عبیات افزودو گذاشن تا نام نامبارک محمود رو هم بیارن و شانامه بیارن یعنی که ترین این ای که ما الان داریم متعلق به 620 هجری قمری هست این دست خورده هست. تمام این عبیات افزودو نام محمود اینا همه توش هست در حالی که فیدوسی می ن به محمود اشاره کرده چون ننگش اومد از این درم خرید زاده نام ببره یکی در آغاز شاهنامه است که میگه ستن باد بر جان او ما و برتن کجا بر تن شاه شد یعنی امیر منصور حامی فردوسی رو از بین برد میگه باد بر جانش و یکی در پایان شاهنامه است که سال 400 موقعی که محمود سالار خراسان هست میگه که در همون نامه روستان فرخزاد به برادر میگین گفتار روز رو داره میگه گفتار خود فردوسیه بر این ساغلیون چهارصد بگذرد که از این دوده از تخت را پرد شبد بنده بی شهریار نژاد و بزرگی نیاید بکن من اینا رو همرو در جن... جلسات پیشین جلسات نخستین صحبت کردم دلیل آوردن به هیچ وجه این ابیات متعلق به فردوسی, فردوسی نیست گفتنشان ما متعلق با سال 600 یعنی در حقیقت 200 سال بعد از فردوسی یعنی در سی سال بعد از فردوسی و که محمودم از این جهان رفته بود اون وقتی که حافظه ها یک کمی میتونست باور کنه اون جمع خودفروخته یه پنج نفره رو گرد همه آوردن به شوانومه اینا افسودن. همه اینا در کانترین هم هست. بله، خب استاد این بحث هایی که فرمومدی تکراریه این تکرار مثل اون حلاوت قند و تراوت بارانه که بارانم خیلی تکرار میشه و از دست نمیده. هر بار که گفته بشه باز هم مطمئنن بله چون موجه و میبان تازه داریم بله چون هم هستند که شاید به حال این پشتش براشون مطرح باشه من چون در چند پیامک هم بله. دیدم که به این نقطه اشاره شده اینها رو سرجم. جنبندی کردم بله, بله. خدمتون ارز کردم